and own. الله که بخشاینده و با رحمت است ستاقش خاص خداوندی است که آسمان و زمین را آفرید و تاریکی و نور را پدید آورد اما ناسپاسان برای پروردگارشان شریک و همتا قائل می شوند. او کسیست که شما را از گل خلق کرد. سپس عمری برایتان مقرر داشت که آگاهی از این زمان معین نزد اوست. با این همه شما تردید می برزید. خدای آسمان ها و زمین اوست هم اسرار شما را میداند و هم آشکار شما را و به دستاوردتان آگاه است و هیچ آقیه از آیات پروردگارشان به سراغشان نیامد مگر آن که از آن روی گردان شدند آنها حق را وقتی سراغشان آمد تکذیب کردند پس به زودی حقیقت اخباری که آن را به تمسخر میگیرند بر آنها نمایان خواهد شد آیا ندیدند که چه بسیار مردمی را قبل از آنها از بین بردیم، مردمی که قدرتی با آنها عطا کرده بودیم که به شما ندادهیم. باران ها و رحمت پی در پی بر آنها فرستادیم و نرها در زیر پاگشان جاری کردیم. اما به خاطر نافرمانی و گناه هلاکشان کردیم و بعد از آنها جماعت دیگری پدید آوردیم. حتی اگر کتابی نوشته بر روی کاغذ بر تو نازل کنی باز ناسپاسان با آنکه با دستهایشان آن را لمس می‌کنند، خواهند گفت: این چیزی جز جادو و چشم بندی آشکار نیست. و گفتند: چرا فرشتهای بر اون نازل نشده است؟ حالان که اگر فرشته نازل میکردیم کار تمام شده بود؟ و آنها مهلتی نمیدادیم. و حتی اگر فرشته را به عنوان پیام بربر باز به صورت مردی بر آنها میفرستادیم و اگر چنین میکردیم کار را بر آنها مشتبه می کردیم همچنان که آنها بر دیگران مشتبه می کنندند بدانکه، آن بران پیش از تو را نیز مسخره میکردند، اما آثار سوء این تمسخر دامنگیرشان شد بگو در زمین سیر کنید و ببینید عاقبت تسییب کنندگان حقایق چه بوده است بگو آنچه در آسمان و زمین است از آن کیست بگو از آن خدایی است که رحمت و بخشش را بر خودش واجب کرده است خدایی که همه شما را در روز قیامت که هیچ شکی در وجود آن نیست جمع خواهد کرد و کسانی که به خودشان ضرر زدهاند همان کسانی هستند که به حقایق ایمان نمیآورند آنچه در شب و روز ساکن است از آن اوست و او شنوا و آگاه است بگو چگونه غیر از خدا تکیگاهی برای خود قرار دادند در حالی که او آفریننده آسمان ها و زمین است روزی دهنده است اما خود به روزی نیاز ندارد بگو ای پیامبر، به من امر شده است اولین کسی باشم که تسلیم محض خداوند است و عمر شده است که هرگز از مشرکان نباشم بگو من از اینکه پروردگارم را نافرمانی کنم میترسم زیرا عذاب روز بزرگ در پیش است در آن روز از عذاب هر کس صرف نظر شود مورد رحمت خداوند واقع شده و این یک پیروزی آشکار است و الله فلا كاشف الا و اینم سسکه بخیر فهو على كل قدیر. بدان اگر خداوند بخواهد زیانی به تو برساند هیچکس غیر از او نمی آن را دفع کند و اگر بخواهد نعمتی را شامل حالت کند او بر هر کاری تواناست و او کاملا بر بندگانش مسلط است و در حال حکیم و آگاه است بگو مهمترین گواهی گواهی چه کسی است؟ بگو خداوند گواه بین من و شماست بدانید که این قرآن بر من نازل شده تا هم شما و هم کسانی را که این قرآن بعدها به آنها میرسد از نافرمانی خداوند برحضر دارد. آیا باز شهادت می دهید که خدایان دیگری با الله هستند بگو من که چنین شهادتی نمی‌دانم بگو او خدای یکتاست و من از شرک ورزی شما بیزارم و آنهایی که کتاب آسمانی عطا کردیم پیامبر را خوب میشناسند. آنچنان که فرزندان خود را میشناسند. و بدان کسانی که به خودشان زیان رساندند همان کسانی هستند که اهل ایمان نیستند چه کس ستمکار تر از است که به خدا دروغ بندد و یا آیاتش را تکذیب کند؟ بدانید که او ستمکاران را آقابت به خیر نمی کند بیشک روزی که همه مردم را محشور کنیم به مشرکان می گوییم کجا هستند شرکایی که همتای خدا می پنداشتید. و فتنه آنان چیزی نیست جزان که به دروغ گفتند به خداوندی که پروردگار ما سوگند که ما از مشرکان نبودیم ببین چگونه به خودشان هم دروغ میگویند؟ و آن افتراها چگونه ناپدید می شود. و از اینان کسانی هستند که به حرف‌های تو گوش می‌دهند ولی ما بر قلبهاشان پرده انداختیم و گوششان را سنگین کردیم تا فهم حقایق نکنند و آنها اگر تمام های حق را ببینند باز باور نمی‌کنند بدان که فقط به سوی تو میآیند تا به مجادله بپردازند و کافران می‌گویند این حرفها همان افسانه پیشینیان است اینها تلاش می کنند تا هم خود و هم دیگران را از پیانبر دور کنند در حالی که با این کار کسی جز خود را به ورته نابودی نکشیدند اما شعور درک این معنی را ندارند و اگر آنها را در روز حسابرسی در برابر آتش ببینی میگویند کاش به عقب باز میگشتیم. و این بار آیات پروردگار را انکار نمیکردیم. و از جماعت اهل ایمان می شدید. همین را همراست نمیگویند گویند بلکه آنها در این لحظه شاهد دستاورد و نیتهایی که مخفی کردند هستند و اگر به قبل بازگردند دوباره به همان چیزهایی که از آن نه شدند برمی گردند. آنها قطعا دروغگو هستند اما اکنون در دنیا گویند جز این زندگی دنیای ما هیچ چیز دیگری وجود ندارد و ما دوباره زنده نخواهیم شد. و اگر آنها را هنگامی که در برابر خدا ایستاده‌اند ببینی، خدا گوید آیا این حق نبود؟ گویند آری. سوگند به پروردگارمان حق است. و خدا گوید به خاطر دستاورد کفرآلودتان عذاب را بچشید. حقیقتاً زرر کردند کسانی که دیدار خداوند را انکار نمودند آن زمان که ناگهان قیامت بر شود گویند وای بر ما به خاطر تقصیری که کرده این. آن هم در حالی که دستاوردهای گناهارودشم را چون باری گران به دوش میکشند و چه بار بد و طاقت فرسایی را به دوش میکشند و الدنیا لعب والت دوول اخی را توخواهی الذيینیت تقون بدانید این دنیا جز بازیچه و چیزهای سرگرم کننده نیست؟ حالان که زندگی جاوید برای کسانی که حرمت خدا را نگه می دارند بهتر است؟ چرا عقلتان را به کار نمیاندازید؟ می دانیم که تو نسبت به آنچه میگویند غمگینی قمگینی اما بدان که آنها تو را انکار نمی کنند بلکه ستمکاران آیات و نشانههای خدا را انکار میکنند. بدان که پیامبران قبل از تو نیز تکذیب شدند اما آنها در مقابل تکذیب ها به زیبایی صبر کردند و آزار را به جان خریدند تا موقع یاری ما رسید و بدان که هیچ چیزی کلمات و تعهدات خدا را تغییر نمی دهد و تو به قسمتی از سرگذشت پیامبران آگاه شده ای و اگر قصه بی ایمانی آنها را می و دوری کردن از آنها برایت سخت است اگر می توانی نقبی در زمین پیدا کن و یا نردبانی را در آسمان بگذار تا برایشان معجزه قابل باور بیاوری. بدان اگر خدا صلاح میدانست است همه را هدایت میکرد ولی هدایت اجواری ارزشی ندارد پس تو از نادانان مباش تنها کسانی که با گوش جان میشنوند پذیرای دعوتت هستند بیشک خداوند مردگان را زنده کرده و به سویش بازگردانده خواهند شد و گفتند چرا معجزه از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ بگو خداوند می تواند معجزه ای نازل کند، اما بسیاری از آنها نمی دانند. اگر معجزه بیاید و باز ایمان نیاورند، به خاطر این بیهرمتی عذاب الهی حتمی است. هیچ جنبنده ای بر روی زمین نیست، و هیچ پرندهی با بالهایش در هوا پرواز نمی مگر آن آنها نیز همچون شما امتهایی هستند و ما در قرآن هیچ چیزی را از قلم نینداختهیم و سرانجام همه نزد پروردگارشان جمع می شوند کسانی که آیات ما را انکار کار کنند کران و رها شده در تاریکی خدا هر که صلاح بداند در گمراهی و حیرانی می‌گذارد و هر که صلاح بداند راه درست و نجات بخش را بر او نمایان می‌کند اگر راست می‌گویید به من پاسخ دهید آیا اگر عذاب الهی بر شما فرود آید و قیامت بر پا شود باز غیر خدا را برای کمک می‌خوانی بلکه تنها خدا را می‌خوانی و اگر او بخواهد شما را از رنجی که برای رفعانیاری میطلبید نجات خواهد داد و آن شرکایی که میپنداشتید فراموش خواهید کرد ما برای مردمانی که قبل از تو بودن پیامبرانی فرستادیم و آنها را در سختی و تنگینا قرار دادیم تا شاید برای وصول به حق بیتکبر زاری کنند اما چرا؟ هنگامی که سختی و رنج به آنها رسید به درگاه حق زاری نکردند زیرا قلبهایشان سخت و سنگین شده و شیطان نیز اعمالشان را در نظرشان بزرگ و زیبا جلوگر ساخته است و چون حقی را که به آنان یادآور شده بودیم فراموش کردند درهای گشاگش و همه گونه نعمت را برایشان باز کردیم تا خوشحال شود و به آنچه به آنها داده شده دل ببندند ناگهان همه را گرفتیم و ناامید و معیوس رهایشان کردیم و پروردگار جهانیان را شکر و سپاس که ریشه قوم ستمکار کنده شد بگو چه تصور میکنید اگر خداوند قدرت درک حقایق را از گوش ها و چشم ها قلب های شما بگیرد کدام خدا به جز الله می تواند آن را به شما برگرداند ببین چگونه آیات و ها را شرح می دهیم اما آنها روی بر می بگو اگر عذاب خدا چه به صورت غافل گیر کننده و چه به صورت آشکار بیاید چه می بینید؟ آیا جزت کاران هلاک می شوند؟ و ما پیانبران را جز برای مجد دادن و بیم رساندن مبعوص نکردیم پس هر که ایمان آورد و عمل نیک و مفید انجام دهد هیچ ترس و یعص و اندوهی به خود راه ندهد و کسانی که آیات ما را انکار کردند به کیفر دستاورد زشت و پریدشان عذاب الهی آنها را فرا میگیرد. بگو من نمیگویم که خزائن قدرت الهی نزد من است و نمیگویم که بر غیب و نادیده‌ها آگاهم و حتی به شما نمیگویم که من یک فرشته ام فقط از آنچه که به من میشود پیروی میکنم بگو آیا کور و بینا یکسانند چرا تفکر نمی کنی؟ و کسانی را که میترسند در برابر پروردگارشان قرار گیرند به واسطه قرآن ده و بگو برای آنها به غیر از او هیچ یاور و شفیعی نیست شاید حرمت خداوند را نگاه دارند و کسانی را که هر صبح و شام پروردگارشان را میخواند و مشتاق وصل و دیدار اویند ترد مکن زیرا نه چیزی از حساب آنها بر اهده توست و نه چیزی از حساب تو بر عهده آنان پس اگر آنها را از پیش خود ترد کنی بدون تردید از ستمکاران خواهی بود و ما برخی را به برخی دیگر امتحان کردیم تا آنجا که گفتند چرا خدا از بین ما به اینان نعمت داده است آیا خداوند شاکران را بهتر نمیشناسد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 و هنگامی که اهل ایمان سوی تو آمدند بگو سلام بر شما پروردگارتان بر خودش رحمت و بخشش را واجب کرده است بدانید هرکس کار بدی را از روی گفرت و نادانی انجام دهد آنگاه توبه کرده و با کار نیک جبران کند بیشک خداوند آمرزنده و باگذشت است و اینچنین آیات و نشانه ها را به تفصیل بیان می کنیم تا راه و رسم گناهکاران آشکار شود. بگو من من شدم از اینکه که بجز خداوند را شما به جای خدا می پرستش کنند بگو خواهش های نفسانی شما را پیروی نمی کنم. که اگر چنین کنم گمراه خواهم شد و هیچگاه رنگ هدایت را نمی بینم بگو من از پروردگارم دلیلی آشکار دارم همان دلیلی که شما انکار کرده اید بدانید آنچرا برای رسیدن به آن شتاب می کنید نزد من نیست حکم فقط حکم خداست او کسی است که حقیقت را بیان می کند و بهترین جدا حق از باطل است بگو اگر آنچرا که برای رسیدن به آن کتاب می‌کنید نزد من بود داستان بین من و شما هم تمام شده بود و خداوند بزرگ بر ستمکاران آگاهی کامل دارد و وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ ورقةٍ إلَّا يعلمها وَلَا حَبْتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جلِيد هاي غيب و بنادیدان از اوست و هیچ کس جز خودش بر آنها آگاهی ندارد او کسی است که نسبت به آن چه در خشکی و دریا گذرد، عالم است حتی هیچ برگی از درخت نمی‌افتد مگر آن که از آن آگاه است و نیز هیچ دانهای در تاریکی اعماق زمین و حتی هیچ تر و پشکی نیست مگر آن که مقدراتش در کتابی روشن ثبت شده باشد. اوست که شب در خواب روح از بدنتان برمیگیرد در حالی که آنچرا که در روز انجام داده اید می‌داند و صبحگاه دوباره شما را زنده می‌کند و این چرخه ادامه می‌یابد تا عمرتان پایان پذیرد سپس بازگشتتان به سوی اوست و شما را از عملکردتان آگاه می کنند. اوست که بر بندگانش مسلط است و نگهبانانی بر شما گمارده است که چون عمر کسی از شما به پایان رسیده باشد فرستادگان من جان او را بی هیچ کتاهی بگیرند تا به سوی سرپرست حقیقیشان خداوند بازگردانده شوند بدان حکم بیچون و چرا؟ از آن اوست و او در محاسبه اعمال سریع ترین حسابگرام است بگو کیست که شما را از ظلمات خشکی و دریا نجات بخشد در حالی که شما بزاری و در خفا او را میخوانید که اگر این بار ما را از این مهلک نجات دهد بدون شک شاکر و سپاس گذار می شمید. بگو خداست که شما را از این محلکه ها و مصیبت ها نجات می دهد. اما باز شما یادتان می و شرک می برزید. بگو او قادر است عذابی بر شما بفرستد که از سراپایتان بجوشد و یا شما را گروه گروه در هم افکند تا تعم تلخ جنگ را به هر یک از شما توسط دیگری بچشاند ببین چگونه آیات و نشانه ها را شعر می دهیم تا شاید حقایق را بفهمند و قوم تو برآن را تقسیب کردند در حالی که کاملا حق است پس به آنها بگو من وکیل و مدافره شما نیستم برای هر خبری جایگاهی و زمان است به زودی خواهید فهمید و اگر دیدی جمعی از روی اناد و بهانهجویی به آیات ما پرداختند از آنها روی بگردان تا به مطلب دیگری بپردازند و اگر چنان که شیطان باعث فراموشیت شد هنگامی که یادآور شدی با آن قوم ستمکار منشین اما اگر کسانی که پرلیزگارند و جهت ارشاد در چنین جمعی حضور دارند به گناه آنان با نخواهند شد پس حقایق را یاداوری کنند شاید حرمت فرمان خدا را نگاه دارند آن کسان که دینشان را به بازی و سرگرمی گرفته‌اند رها کن زیرا زندگی دنیا مغرورشان ساخته است فقط به واسطه قرآن به آنها یادآوری کن مبادا دستاوردشان دامنگیرشان شود در حالی که به جز خدا هیچ یاور و شفیعی نخواهند داشت حتی اگر برای رهایی از عذاب هر گونه فدیهی دهند پذیرفته نخواهد شد و آنها کسانی هستند که به خاطر دستاورد کفرالودی که دامنگیرشان شده است برایشان شرابی از آب جوشان و عذابی دردآور مهیا شده است بگو چرا به جای خدا چیزی را بخوانیم که نمیتواند به ما سود دهد و نزیان برساند چرا پس از آنکه خدا هدایتمان من کرده همچون کسی که شیطان گمراهش کرده و در زمین حیرانش نموده از حق برگردی. حالان که او را یارانیست که به هدایتش میخواند که نزد ما بیا. بگو تنها هدایت خداوند هدایت است. ما امر شده که تسلیم محض پروردگار جهانیان باشیم. و نماز را به پای دارید و حرمت او را پاس بدارید حرمت همان کسی که نزدش محشور خواهید شد و او کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و روزی که به هر چیزی گوید موجود چو موجود شود کلامش حق است و آن روز که در سور دمیده شود حکومت خاص اوست است دیده و نادیده را و او حکیم و آگاه است و که ابراهیم به پدرش آذر گفت آیا بوتان را به عنوان معبود برگذیده بدون تردید هم تو و هم تو را در گمراهی آشکاری میبینم این چنین شد که به ابراهیم ملکو تا و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین شود. و چون تاریکی شب او را فرا گرفت ستاره ای را دید و گفت این پروردگار من است. و چون ستاره غروب کرد و ناپدید شد گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم و که ماه را دید که طلوع کرده گفت این پروردگار من است اما زمانی که دید آن هم افول کرد و ناپدید شد گفت اگر پروردگارم مرا به راه را صدایت نکند بیشک از قوم گمراهان خواهم بود پس هنگامی که خورشید را در حال طلوح دید گفت این دیگر خدای من است زیرا از همه بزرگتر است اما وقتی دید آن هم غروب می کند گفت ای قوم من از شرکی که می ورزید بیزارم این وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما من, من تسلیم محض روی خود را سوی کسی متوجه می کنم که آسمان ها و زمین را آفرید و من هرگز از مشرکان نخواهم بود و که قومش به او پرخاشگری کردند گفت چرا در رابطه با خداوند با من به پرخاشگری برخواسته اید حالان که او من به راه نجات هدایت کرده است من از چیزهایی که شما همتای خدا قرار می دهید نمی ترسم مگر آنچه را پروردگارم بخواهد وسعت علم و آگاهی پروردگارم همه چیز را فرا گرفته است آیا هنوز هم هشیار نمی و چگونه از چیزهایی که شما همتای خداوند قرار داده اید بترسم در حالی که شما در مورد شرک زشت خودتان به خدا که هیچ دلیل الهی هم ندارد نمی ترسید اگر می بگویید ببینم کدام یک از دو گروه بودپرستان و خداپرستان شایستگی بودن در فضای امنیت و آرامش را دارند کسانی که ایمان آوردند ایمان خود را به شرک و ظلم آلوده نمی کنند زیرا امنیت و آرامش برای آنهاست. و آنان به راه نجات و رستگاری هدایت شدند و این دلاگر ما بود که به ابراهیم در مقابل قومش عطا کردیم هر که را صلاح بدانیم به درجات بالاتر میبریم و پروردگار تو حکیم و آگاه است و به او اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و همه آنها را هدایت نمودیم و نیز نوح را قبل از آنان به راه نجات هدایت کردیم همچنین فرزندانش داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و را و اینچنین پاداش نیکوکاران را میدهیم و ذکریاو و یحیاف و و الیاس همگی از سالهان و اسماعیل و یسع و یونس و لوت همه را بر جهانیان برتری دادیم و از پدران و فرزندان و برادرانشان گروهی را برگزیدیم و به راه راست و نجات بخش هدایت کردیم این است هدایت خداوند هر کس از بندگانش را سلاح بداند هدایت میکند و اگر شرک ببرزند همه اعمال نیکشان تباه می شود آنها کسانی که کتاب و قدرت و نبوت عطایشان کردیم و اگر به آیات حق کفر ببرزند کسان دیگری را برای پاسداری از حق انتخاب خواهیم کرد که به آن کافر نباشند اینان کسانیند که خداوند هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن و بگو در برابر این رسالت الهی از شما پاداشی نمی زیرا این قرآن فقط پند نامی برای جهانیان است خدا را آنچنان که شاگسته اوست نشناختند آنگاه که گفتند خداوند هیچ چیزی بر کسی نازل نکرده است بگو چه کسی کتابی را که موسا آورد نازل کرده است همان کتابی که برای مردم نور بود و هدایت اما شما آن را تبدیل به کاغذهایی کردید و قسمتی از آن را آشکارا در معرض عموم قرار دادید و بسیاری از آن را پنهان کردید در حالی که مطالبی به شما تعلیم داده شد که قبلا نه شما میدانستید و نه پدرانتان بگو الله آنگاه ترکشان کن تا با اوهامشان سرگرم باشند. و این کتاب است که نازل کرده ای. کتابی که تایید کننده کتب آسمانی پیشین است تا مادر همه شهرها و هر کس را در اطرافش است از نافرمانی خدا برهضر داری و بدان کسانی که به آخرت ایمان آوردهاند آن را باور دارند و بر نمازهایشان مراقبت می کنند. و چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خدا دروغ بندند؟ یا بگوید به من وحی شده است در حالی که، هیچ وحیی بر او نازل نشده است و یا کسی که بگوید من همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم و کاش میدیدی دیدی هنگام که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفتند و فرشتگان قبض روح دستهایشان را گشودند و میگویند جانتان را بالا بیاورید که امروز به خاطر دروغ هایی که به خداوند نسبت داده اید و تکبری که نسبت به آیاتش داشته اید، جزایی خار کننده انتظارتان را می کشند. اکنون، تنهای تنها، همان گونه که روز اول خلق شدید، به سوی ما آمده اید و آنچه را به شما بخشیده بودیم، پشت سر گذاشتید. در حالی که شفیان و تکیگاه های خود را که فریاد رست می با شما نمی بینید. اکنون تمام پیوندهایی که داشتید بریده شده است حتی تمام آنچه را که در خیال می از شما دور شده است. این خداوند است که دانه و هسته را می شکوفاند و زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. خداوند شما این چونین است پس چگونه از حقیقت منحرف می فالق الاصباح و جعل اللیل سکنه و الشمس و القمر خصبانه ذالک تقدیر العزیز العلیم او شکوفنده صبح است و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله محاسبه زمان قرار داد این اندازگیری خداوند مقتدر و آگاه است و او کسی است که ستارگان را وسیله راهیابی شما در ظلمات بیابانها و دریاها قرار داد حقیقتا نشانه را برای آنان که میفهمند به تفصیل بیان کردیم و او کسی است که شما را از یک جان واحد خلق کرد بعضی را کامل و پایدار و برخی دیگر را نافایدار حقیقتا نشانه ها را برای کسانی که جرفندی به تفصیل بیان کردیم و او است که از آسمان بارانی نازل کرد و به وسیله آن انواع گیاهان را رویاندیم و از آن شاخه های سرسبزی به وجود آوردیم متاقب آن دانه انبوهی را نمایان کردیم و نیز از شکوفهای درخت نخل خوشهای سرفرود آورده پدید آوردیم و باغهای از تاک و زیتون و انار برخی شبیه هم و برخی غیر متشابه خلق کردیم پس به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانهای قدرت و عظمت خداوند برای اهل ایمان است اما آنها برای خدا شریکانی از جن قرار دادند در حالی که جن را خدا خلق کرده است و از روی نادانی و دروغ برای خدا دختران و پسرانی قائل شدند حالان که او پاک و بیعیب است و از آنچه که می پندارند فراتر چگونه می شود پدیداورنده زمین و آسمان ها فرزندی داشته باشد در حالی که همسری نداشته است بدانید که او همه چیز را خلق کرده و به همه چیز آگاه است این چنین است الله پروردگار شما هیچ معبودی جزو نیست خالق همه چیز است پس او را پرستش کنید و بنده او باشید زیرا او حافظ و نگهوان همه مخلوقات است هیچ چشم تیزبینی او را درک نمی کند در حالی که او چشم ها و صاحبانش را می بیند و او آگاه و لطیف است حقیقتا دلایل روشنی از سوی خداوند برای شما آمده است پس کسی که از روی بسیرت بان بنگرد به سود خود کار کرده و هرگز دیده فرو بندد به زیان خیش عمل کرده است و ما شما را اجبار نمیکنیم و اینچنین آیات را گوناگون بیان میکنیم مبادا بگویند تو آنها را از کسی آموخته حال ما این آیات و نشانه ها را برای اهل دانش بیان میکنیم از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی شده تبعیت کن جزو معبودی نیست و از مشرکان روی بگردن اگر خدا میخواست آنها هم نمیتوانستند شرک بورزند و بدان که ما تو را مسئول حفاظت از آنها قرار ندادیم و تو وکیل و کارساز آنها نیستی هیچگاه به معبود کسانی که غیر خدا را میپرستند دشنام مدهید تا آنها نیز از روی نادانی و دشمنی الله را دشنام دهند ما اعمال هر گروهی را به چشمشان زیبا جل بگر کرده ایم. سپس به سوی پروردگارشان باز خواهند گشت و از عمل آگاهشان خواهد کرد با سختترین قسمها خداوند را سوگند یاد کردند که اگر معجزهای برایشان بیاگد حتماً به آن ایمان خواهند آورد بگو همه معجزات به دست خدا و در اختیار اوست و شما از کجا می دانید که اگر معجزهی بیاگد ایمان میآورند؟ نه آنها اهل ایمان نیستند همانگونه که در ابتدا با آن ایمان نیاوردند این بار نیز قلبها و مراکز فهم و درک آنها و دیدههایشان را واژگونه می‌کنیم و آنها را در تقیان و نافرمانیشان به حال خود وا تا حیران و سرگردان بمانند. اگر فرشتگان را بر آنها نازل کنیم و مردگان با آنها سخن بگویند و هر چیزی را در برابرشان محشور کنیم، باز ایمان نمی‌آورند. مگر آنکه خدا بخواهد بدانید اکثرشان نادانند و برای هر پیامبری دشمنی شکتان صفت از جنس انسان و جن قرار دادیم تا سخنان فریبنده و بی اساس برای گمراهی مردم به یک دیگر الغا کنند بدان که اگر خدا میخواست، نمیتوانستند این کار را بکنند پس آنها را در تهمتهایی که میزنند به حال خود واگذار و آنان که روز قیامت را باور ندارند به وسط ها گوش جان بسپارند و به آن راضی شوند و هر گناهی که بخواهند مرتکب شوند آیا داوری به غیر از خداوند را جستجو کنم در حالی که او برای شما این کتاب مفصل و روشن را نازل کرده است و کسانی که کتاب آسمانی عطایشان کرده ایم خوب میدانند كه که قرآن به حق از جانب پروردگارت نازل شده است پس هیچگاه از تردید کنندگان مباش و تمت کلمت ربی صدقا و لا مبدل لكلماته و هو السمیع العلیم و کلام تو در راستی و عدالت به حد کمال است و هیچکس توان تغییر کلماتش را ندارد زیرا که او شنوا و آگاه است اگر از اکثر کسانی که روی زمینند پیروی کنی بدان که از راه درست خدا گمراحت می کنند زیرا آنها جز از زن و گمان خود پیروی نمی کنند و جز به تخمین و حدس سخن نمی گویند. بدان که پروردگارت هم نسبت به کسانی که از راه الهی گمراه شدهاند آگاهی کامل دارد و هم به رهی آفتگان حقیقی و اگر به آیات خدا ایمان دارید از آنچه بخوری که نام خداوند بران برده شده است چرا از آنچه که نام خدا بران برده شده است نمی خورید حالان که خداوند آنچرا که بر شما حرام نموده بیان کرده است و از حرام نخورید مگر آنکه ناچار شدید بدانید بسیاری از روی هوا و هوس و نادانی دیگران را گمراه می کند همانا پروردگارد آنها که از حد تجاوز می کنند آگاهی کامل دارند. و گناهان را چه آشکار باشد و چه پنهان ترک کنید زیرا کسانی که دستاوردشان گناه است، به زودی به خاطر آن چه مرتکب شدند مجازات خواهند شد و از چیزی نخورید که نام خدا بران برده نشده است که این گناه است بدانید که شیاطین به هوادارانشان مطالبی القا می تا با شما به مجادله برخیزند و اگر از آنها اطاعت کردید بیتردید شما هم جزو مشرکانید آیا آن کس که مرده بود و ما زندهاش کردیم و نوری برایش قرار دادیم تا به واسطه آن در میان مردم راه خود را بیابد با کسی که در تاریجی گرفتار است و راه خروج را نمیداند یکسان است؟ این چونی عمل کرده کافران به چشمشان زیبا جلوهگر می شود و این گونه سران گناهکاری را در شهرها قرار دادیم تا آنجا به مکر بپردازند در حالی که آنها کسی جز خودشان را فریب ندهند شعور درکش را ندارند ورگا هرگاه برای آنها آمد گفتند ایمان نمی آوریم مگر آن چرا که به پیامبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود بگو خداوند داناتر است به این که رسالت خود را در کجا قرار دهد به زودی از جانب خداوند به اینان به خاطر فریبکاریشان عذاب شدید و خارکننده ای خواهد رسید. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا هر کس را خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را وسیع و مستعد تسلیم شدن می کند و هر کس را بخواهد در گمراهی گذارد سینه اش را آنچنان تنگ و ظرفیتش را محدود می نماید که گویی به آسمان برود. این گونه خداوند پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار میدهد. و این راه راست پروردگار توست. ما آیات و نشانه را برای کسانی که پند می‌گیرند بیان کردیم. برای آنها سراغ امنیت و آرامش، نزد پروردگارشان محیاست و او یاورشان است به خاطر دستاورد نیکی که داشتند روزی که خدا همه را محشور کند گوید ای جماعت جنیان بسیاری از انسانها را پیرو خودتان کردید و انسانهای حوادار آنها گوید پروردگارا ما از یک دیگر بهره می تا اینکه مرگمان آن زمان که تو مقرر کرده بودی فرا رسید و خدا گوید آتش جایگاه شماست تا آن زمان که خدا بخواهد آن بمانید بدان که پروردگار تو حکیم و داناست و اینچنین ما برخی از ستمگران را به برخی دیگر با میگذاریم تا به خاطر دستاوردشان به یک دیگر مشغول باشند ای جماعت جن و اینس آیا پیامبرانی از جنس خودتان به سویتان نیامدند پیامبرانی که حقایق آیات مرا بر شما میگفتند و شما را از دیدار چنین روزی روزی برحضر میداشتند گفتند اکنون ما به زیان خودمان گواهی میدهیم بدانید زندگی دنیا آنها را فریفته بود و حال علیه خودشان شهادت میدهند. زیرا آنها نسبت به حقایق کافر بودند این بدان خاطر است؟ که پروردگارت هیچگاه اهل شهرها را به سبب ظلمشان در حال غفلت و بیخبری حلاک نمی کند و برای هر کس نسبت به عمل کردش درجاتی وجود دارد و پروردگارتو از عمل کردشان قافل نیست و پروردگارتو بینیاز و صاحب رحمتی وسیع است اگر بخواهد همه شما را از بین می برد و هر کس را بخواهد جایگزین شما می کنند. همچنان که شما را جایگزین نسل دیگری کرده است آنچه به شما وعده داده شده نیست، و شما نمی از آن فرار کنید بگو ای قوم من هر آنچه می انجام دهید من نیز کار خودم را می کنم به زودی خواهید فهمید که عاقبت به خیر کیست بدانید که خداوند ظالمان را رستگار نمی کند. آنها برای خداوند سهمی از محصول زراعی و از چهار پایان قرار دادند و به خیال خامشان گفتند این سهم خدا و این هم سهم بوتان آنچه مال شرکای آنها بود به خدا نمی رسید اما آنچه مال خدا بود به شرکایشان می رسید چه حکم بد؟ و ابلهانه ای می کنند وسطسهای شرکالود کشتن فرزندان را در نظر بسیاری از مشرکان عملی پسندیده جلوه داد و سرانجام آنها را به حلاکت رساندند و در دینشان نیز آنها را به شک و اشتباه انداختند در حالی که اگر خدا می خواست، آنها این کار را نمی کردند اما هدایت اجباری سودی ندارد پس آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذارد و گفتند اینها چهار پایان و کشتزارهای ممنوع است هیچ کس بدون اجازه ما حق استفاده از آن را ندارد اینها چهار است که نباید بر آنها سوار شد و اینها چهار است که نباید هنگام زیفر نام خدا را بر آنها برد بدانید این احکام است که بر خدا می بندند و به زودی جزای افترایشان داده خواهد شد و گفتند آنچه در شکم این چهار پایانه است برای مردان ما حلال است و برای زنان ما حرام و اگر مرده باشد زن و مرد آن شریکند بدانید که خداوند به خاطر گفتارشان مجازاتشان خواهد کرد زیرا او حکیم و داناست حقیقتا زیان کردند آنها که از روی سبک عقلی و نادانی فرزندانشان را کشتند و آنچرا خداوند با آنها روزی داده بود حرام کردند و بر خدا افترا بستند آنها گمراهند و هیچگاه اهل هدایت نبودند خداوند باغهای آفریده که برخی درختان آنها نیازمند تکگاهند و برخی بر ساقه های خود استوارند و نخل و محصولات زراعی را آفرید در حالی که میوههایشانطعمهای متنوع ای دارند. همچنین باقاوی زیتون و انار را آفرید در حالی که برخی شبیه هم و برخی متفاوتند. از میوههایش هنگامی که رسید بخورید و در روز برداشت حق آن را بپردازید، و اصراف مکنید زیرا خداوند هدر دهندگان نعمت را دوست ندارد و خدا هم چهار پایانی که بار میبرند و هم حیوانات کوچک دیگر را آفرید بخورید از آن چه خداوند روزیتان کرده و پاقی جای پای شیطان مگذارید زیرا او دشمن آشکار شماست هشت رأس از حیوانات را برای شما آفرید. از گوسفند یک جفت و از بز یک جفت. بگو آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده یا ماده ها را؟ یا آنچه در شکم ماده ها قرار گرفته؟ اگر راست میگویید و بر تحریم آنها دلیلی دارید به من هم بگویید. و یک جفت از شطر و یک جفت هم از گاو برای شما آفرید. بگو کدام یکی از اینها را خداوند حرام کرده است نرها یا ماده ها را یا آنچه در شکم ماده ها قرار دارد آیا شما وقتی خداوند حکم تحریم آنها را داد شاهد بودید کیست ظالمتر از آن که به خداوند دروغ ببندد تا بدین وسیله مردم را گمراه کند آن هم بدون دلیل بدانید که خداوند جماعت ظلم پیشه را به نجات راهنمایی کند بگو در میان آنچه به من وحی شده است خوردنی حرامی نمیيابم جز مردار و خون ریخته شده و گوشت خوک که پلیده است و یا حیوانی که به گناه به نام غیر خدا زیب شده باشد و اگر کسی از روی ناچاری و استرار و با میلی از آن بخورد و خوردن رانیز از حد نگذراند بداند که خداوند آمرزنده و بسیار باگذشت است و بر یهودیان هر حیوان دارای ناخن یا سم ناشکافت را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیه و چربی آنها را تحریم کردیم مگر آن قسمت از چربی که بر پشت آنهاست و یا به رودها و استخانها چسبیده است و این تحریم را به خاطر ستم این که کردند آنها روا داشتیم و بدانید که ما راست می‌گوییم. و اگر تو را تکذیب کردند بگو پروردگار شما صاحب رحمتی وسیع است و در این حال مجازات او برای مجرمان غیر قابل رفع است به زودی مشکان برای تبرعه خویش میگویند اگر خدا میخواست ما و پدرانمان شرک نمیورزیدیم و چیزی را هم تحریم نمیکردیم کسانی که قبل از آنها بودند نیز همین گونه دروغ میگفتند تا اینکه عذاب ما را چشیدند بگو اگر بر این مدعا دلیلی دارید پس به ما هم نشان دهید شما فقط از زن و گمان پیروی میکنید و جز به تخمین و حد سخن نمیگویید بگو دلیل کامل از آن خداست و اگر میخواست همه شما را هدایت میکرد بگو آن شاهدانی که گواهی دادند خداوند اینها را حرام کرده بیاورید حتی اگر باز آنها به دروغ شهادت دادند تو هرگز همراه با آنها گواهی مده و از خواهش های نفسانی کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و به خدا و روز حسابرسی ایمان ندارند تویت مکند زیرا آنها به خداوند شرک می‌ورزند بگو بیایید تا آنچنان که پروردگارتان بر شما حرام کرده بیان کند اینکه هیچ شریکی برای او قائل نشوید و به پدر و مادرتان احسان کنید و فرزندانتان را از ترس فقر و نداری نکشید زیرا ما روزی دهنده شما و آنها هستیم و اینکه به گناهان آشکار و پنهان نزدیک مشوید و نیز کسی که جانش را خداوند محترم داشته است نکشید مگر آنکه استحقاق مرگ داشته باشد این نکاتی است که خداوند شما را به آنها ووضعیت می کند امید آنکه تعقل کنید ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبنغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا و بیاله او ذلی کو و صاق بهعلکن ت و به مال یتیم نزدیک نشوید. مگر آنکه به بهترین وجه و برای اصلاح امور او باشد تا اینکه بزرگ و عاقل شود و از روی عدالت تمام پیمانه و وزن می کنید بدانید، ما هیچ کس را بیش از طاقتش مسئول نکرده‌ای و هنگامی که سخن میگویید عدالت را رعایت کنید حتی اگر به ضرر نزدیکانتان باشد و همواره به پیمانی که با خدا بسته اید وفا کنید این چیزی است که خداوند شما را به آن وصیت کند شاید پند بگیرید بدانید که این راه راست من است پس از آن تبعیت کنید و از راههایی نروید که باعث فرق فرقه شدن شما شوند و از راه حق منحرفتان کند این چیزی است که خداوند شما را به آن وصیت می‌کند شاید حرمت فرمان خدا را نگاه دارید آنگاه کتاب را به موسی دادیم تا بر کسی که نیکوکار است نعمت را تمام کنیم و از هر چیزی به تفصیل در آن بیان داشتیم و آن کتاب را هدایت و رحمت قرار دادیم تا شاید آنها روز دیدار با پروردگارشان را باور کنند این نیز گرآنی با برکت است که نازل کرده ایم. پس از آن تبعیت کنید و حرمت نگاه دارید امید آنکه مورد رحمت قرار گیری. تا نگویید فقط بر دو طایفه پیش از ما یهود و مسیحیان کتاب نازل شده است و ما هم نسبت به بحث و بررسی آنها ناآگاه بودیم و یا نگویید اگر بر ما نیز کتاب نازل می شد قطعا مشتاق از آنها در راه هدایت بودیم اکنون دلیل آشکاری از سوی خداوند بر شما آمده است کتابی که هدایت و رحمت است پس چه کسی ظالمتر از کسی است که آیات خدا را تکذیب کند و از آن روی برگرداند؟ به زودی کسانی را که از آیات ما روی گرداندند مجازات شدیدی خواهیم کرد زیرا آنها بدون دلیل روی گردان شدند آیا جزین انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند؟ یا پروردگارد؟ و یا برخی معجزات پروردگارد؟ بدان آن روز که برخی معجزات پروردگارت رونماید دیگر ایمان آوردن کسی که قبلا ایمان نیاورده سودی ندارد حتی برای آنها که ایمان آورده بودند اما کار خوبی در سابقشان نیست با سودی نخواهد داشت بگو شما انتظار بکشید ما هم چشم براه میمانیم تو را با آنها که دینشان را فرقه فرقه کردند به گروه گروه شدند کاری نیست کار آنها با خداست و سرانجام نسبت به عمل کردشان آگاهشان خواهد کرد هرکس کار خوبی انجام دهد ده برابر آن پاداش میگیرد و هرکس کار بد و زشتی مرتکب شود فقط به اندازه آن جزا میبیند و به آنها ستم نمی شود بگو پروردگار من مرا به راه درست هدایت کرده است آن هم به دینی پابرجا به آیین ابراهیم تسلیم خدا و او هیچگاه از مشرکان نبوده است قل ان لله بگو نماز من و تمامی عبادات من و زندگی و مرگ من همه از آن خدا آن پروردگار جهانیان است هیچ شریکی ندارد و برای بیان یگانگی مأمور شده و من سرامد تسلیم شدگانم بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجوگم در حالی که او خود پروردگار همه چیز است بدانید هر کس فقط کیفیت دستاورد خود را میبیند و کسی بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد. عاقبت بازگشتتان به سوی پروردگارتان است و او شما را نسبت به آنچه مورد اختلافتان است آگاه خواهد کرد. او کسی است که شما را جانشینان روی زمین قرار داد و برخی از شما را نسبت به برخی دیگر به درجاتی برتری داد. تا شما رادران چک تقدیمتان نموده امتحان کند بدان که پروردگارت هم مجازاتش سری و هم آمرزنده و بسیار باگزشت هست و يا في ربك سريع العقاب وإن جو الله العلي ومده بلند مرتبه بود، عزیم خاری از مؤسسی پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و, علیه و